خل شدی گره رو با کن شاغولو ببند خل بده بیاد بدری تو نه بدری کی میشه من این غره دیوارو بخرم نه یه موزایک این برتر نه یه موزایک اون برتر سه دونگ خودم اینشالله اینشالله Ma چه خبره میخوام تیغه بکشم سدونگم رو جدا کنم کنشی آقا کریم میخواد باسه خودش شاگرد بذارم تو بذاره آخه تو از شاگرد من خوش شده چرا نیاد چون اسمش عراضه بیخی ها به سر بنیسفری حداقا لوکیشن گوشی خاموش کن که نشه پیدات کرد بابره که شهر وقت از اینجا رد حد میشم واسه فردوسی هم فاتحه میخونم مرد خوبونیه که مشکلاتش رو بذاره پشت در بعد بیه پوش زن باید چشم دارم نه بچه زنگ داری زنگ دل داره دلش به شعور میفته میشکنه شاک میشه دیخبر ندارش دیگه هش وقت نگفتی این که شبانه میتونی بخوابی نعمت یعذاب شوا راس میاد یعنی روزا درو کوام روزا رفت آمد از چلوخی است دور و میرم میام ولی شواب هیچ کس نیست نه رفته است نه اومد نه سر و صدا که میفهمی ته تهش تن Alan maadalam sõnul, kost dürt maadalam, maadalam, maadalam, maadalam, maadalam, maadalam, maadalam, الانه که شوا برای طولان نیم تو هست خوبه که هست بلی مادرم اگه برو این شبا که بیخوابم سرم رو پاش میذاشتم با اون قربون صدقه من میرم من قربون صدقه شد قور سرغ دست پای بلورین مینم من قور سرقه قد بالاش چشای مثل عقیقش ام نو آروم بخواب مادر گفتم میخواب دوری چه شده دور صدات میگردم میخوامم آروم میخوام دلام از این عاج کی گفته عشق نشونه ضعفه من ضعیف نیستم غلط کرده هر کی گفته لیلا اگه به در دست نخورد چی پنجاش فرضی چابوش همه چی رو گذاشت پای تنبیه ازش توقع تشفیح داشتی؟ من دیستش مثل من که تو دوست شد ستار می گفت که خونه باباش حسرت کشیده اینجا هم حالا هم باید بکشید که بابا حسرت مکشیده کم خوردم کم پوشیدم اما زنده لیلا هیچی وقت نخواب به خاطر مال دنیا توی دارشم برسید چشم عاشق چشم شدیم اصلا میگه چشم بیونه میشه یه چشم چشم که برای دافتاری چه خیال ها گذر کرده و زار نکرد No. sõltsemine rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. Rassuline. کی از اتون خواست؟ کی از اتون خواست؟ آقا چمه؟ نگفتم وضعیتش نکنید؟ نگفتم کاری به کار من اون دو آشم نداشته باشید؟ بسته از وقتی فهمیدم چی به چیه چاوش کبید تو سرم کرد یا الا کرده بودم، بلا کرده بودم الان جفتمونش را کردیم بوستان بودیم بست میکنی یا نه؟ چرا نگفته و ندونسته هر کاری که فریاد میخواییم یک ک گفتم نخواه تو روی داشم بایستم مگه خواستم؟ بابا چی کاره هستنه رفته میدونه؟ آره بسته بست کنین بست کنین با جفتتونم ستار ستار ویل کنی اقرو ستار ستار با تو هم ای خدای منم ای بابا کاری به کار داشت نداشته باش من کار به کارش دارم این زندگی منم هست نه داشتن نداشتن چون رومانم تاثیر میذاره نه دیشبه چیزایی دیگه این میگفتی نه شفت سر بابام داد زده بودی نه تمومیم تمومیم به سلامت باش به خدا نمیدونستان به خدا نمیدونستان داداش خدا نمیدونستان نمیدونستی داداش من چه مال دنیا رو خواستم که تو ناراحت بشی به خدا نمیدونستان حنیف اینو از جلوی چشم دورش کرد نبینمش داداش داداش من خدا نمیدونستم به خور آن نمیدونستم به خور نمیدونستم mm <laughs> آسام از ویدو میرم. اگه میتونی فرتم کن. هر روز همینم. میام جلو چشیدا هاشم باشم. داماد استخام مال خودستون. من فقط دا هاشم میخوام. میخوام برادریمو نگه دارم. اون شب سطرو چوغو نذارید. من زدم. ماجورم شدی قسم بخورید. چه چیزی گم میه؟ اون روز در قسم خوردن جلو دادگاه یه چیزی پروندی مونده سر دلم تو حرف سر دلت نیمیده اون نامردی که گفتی من نیستم هستی اسی هستی من فقط میخواستم کشتی رو برندشم همین تو خانده داشت همیشه تو چش بودین برد توجه بودی دردونه بودی من کی بودم یتیم. بی پدر سرباز تنها سر سفره هاج بدری لیلان به توجه مخواستم او آدم گنبه تشویق میخواد من بچه یتیم نمیخواستم اینکه با حرف زدم نه اینکه آشتیم با تو خونداش چابش نخواد منم نمیخواد نه این پارسی منیجه کیه؟ بپرست آقایت بگم واسه خانداداشم چی کار کردم به و یادت بدم میشه از عشق گذشت واسه خانواده میشه از دوست داشتن گذشت واسه خانواده میشه از شکم و جون گذشت واسه خانواده پس خودم میشه گذشت من میگذرم پس از خو وااض ما نیست. بلا که تو ترک شدهی. اونه که با خودش رو راسته منم. همون این دیوار باید خراب می شود. که همونقدر اون قسم باید خورده میشد. ناس میدونی چیه قصه نیست که تنابه میفته دور گلو رو می, کشده. می کشده تو آتیش این دنیاش کسی از حقش نمیزره. میخواای اون دنیا بگذره. روه بابام تو آتیش بود. به که کیلوکیلو دلار میبرن من بعد ریز آدم آقازده نیستم را کیسته باشم. تازه بهدارون رسیده باشم. خونواده و اصل رو نصب نداشته باشم من بدری زادم به خاطر آقام خاطر آقات؟ یا دلت گیر بود پیش لیلا آها به پس لیلا چیه؟ تا بهت بگم به خاطر خونواده میشه از عشق و دوست داشتنم گذش یعنی که من گفتم مشی ولی من عمل کردم لیلا تمام چون گفتون دیوار باید سرجاش بمونه دیواری که قرار بود خارج خارجش شما دهاشم باشه گفتم تماما با کلنگ منم سراغ دیوار فکر آبجی من بی کاره کلمه آبجی برای باید اکیوان نیست چهجب یادت افتاد خوهریم توی این دنیا داری اکه کجا منون بهتر از تو یادم نمیشه آه. یادتو هر حجره میرفتم واسه کار نقش قول تونل وحشت بازی میکردی باید کار ندن کار نداشت گفت خاص منم گفتم چشم باسه شکم آبجید میرفتم چاوش بیش بعد سر و گوزه آمد آتیش بیاره محرکه بشی بله چرا؟ چون چاووش فقط با سیر رو داشت داشته باشه فقط غنیف این همه عقده از کجا میان فقط نگو از یتی که این همه یتی من میشسم چش دلشون سیره تو هم میشنسی آدرس میخوا خاهرت لیگا آگزایس می کنی همین مرتزه شا تو عجب ولی از که شدی؟ از که شدی که هستی؟ تا که می کنی که شدی برمید؟ بزن سر که از زمال خوش نیست مثلا حرفای تو نه حرفات مثلا خیاف چند برم می زنمون دوست دارم دارمون نمیتونم داشته باشمش شما خونده داشت نخواست داشته بشیمش زنت کیه بالا اینا مهربون باش تو داشتشی تو مهربون باش به جرعت داری یقه همو بکیر میگویم از سکم ترمه یه عشق در بیاری یقه تو نگیرم قطعش باز خاطر زنت اومده پایین نه خاطر این قطعش میکنی یقه کیو بگیری خانده داشت بی‌ووجودی تو، نامردی تو سر نخوستن <موون> دواز به جون چوش، سر نخوستن دواز راست شرمنده نایمدم جما راستشو بخوای از حنیف میترس دسمال خی صور بارتزو چونه با چیزی برم میزنیم چی بزنم با قرار نه خواستم در بود کار یه بیا سرف رو گرم کنی بغض داری دختر بغض داری پدر باسه عروضیت کتا میکنم شوهری به جا نمیارم Dushechdir. Karim Bostan o? Arazo. Karim Bostana kheyli dushesh پتری یا کاری ندارم خودم نقشه دارم همراه هر مخ... چی تو قاعده پدری باشه کریم همراه نه بربون کریم بشم نگو پکون نخو به. گوشت میره لوی قیچی بمیرم با ساشون که امروز داد شد بگذر ازش اردک از باباش میگذر که من رو شما بگذرم عشق آرس کدوم بود عشق خودتی بابا کریم از فردا میره حجرت چک دادم به چاوش پای جهازت دستم خالی بود کم نذا من میخوام پرو پیمونش کنم از فردا میره حجرت به جون تو دیگه نمیخوامش زده شدم از اینا دیگه زده شدم قرمت ها پایین شد داداش ها تو رو هم بازدادن عروس به حق بودن پدرشوهرش شک کرد عروس غلط کرد اصلا دیگه به دردم نمیخوره دیگه نمیخوامش این همه برای حق و سم دویدم علکی دویدم علکی دویدم سک هرچی هم بچهره لپولو نمیذارنش از جون صبح به صبح میروی حجرت بابا جو هم خوبه اصرار بی دلیل اصرار پردلیل یکیش اون دیوار وسط حجره که کشیدی درست بود یا غلط هرچی که بین آدم ها جدایی مندزه غلطه پس چرا کشیدیش آه. کشیدم که به وقتش آجور آجور بردارم از بین این دوتا داداش تا چشم تو چشم همه نظر دوباره داداش بشه واسه بدفی واسه طلعه واسه انسانیت انسانیت کجاست که بهشگله کنم امروز جلوه چشم سر بابای مظلومم داد زدم برای سر زندگی میخوام نباشه این زندگی اگه تو شرمت بابا ماسیب ببینه میخوام نباشه میخوام نباشه این حجره بابا میخوام نباشه لیلا میخواد باشه ببینم تالا که حجره نبود نونت کم بود آبت کم بود چیت کم بود پیر حقت شدی بابا حقم اولاد خلفه که دار اولادم از پدر و مادر حق داره نداره داره پس یک پای طلاق هم بایستا دو پای حجرت طلاق نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت توی خونواده به پدرم توهین شده حجرت نگه میداره آقا کریم بوستان بابا کریم بوستان بلنش بلنش از جد به کار میکنیم بابا پای طلاق من با این سه تو پای حجره بابات حاله مادرت پایی چی بایی پای احترام که از شهرت گرفتن از فردا میروه حجره با بابا با. نه تو وقتی بابا نخواد نه لی کرونا خسرو انجام دادی چک گرفتی پشت سرای رفتی دعا کردی داد زدی تو بابا نخود نه دیگه نه چه خبرت این خونه بیا اینه بپیچیم داره کلیم قدیما قدیما تو خانواده بدری یه برادر یه برادر دیگه رو ترت کرده بپیچ بابا تم پای جهاز تو خجره رو به نام آراز میکنه اگه تو طلاق <تصفيق> بگیری خجره از دست مواد رفته بس طلاق نگیر مینه رو به من میدید نگو که تو هم موافقی آراز وقتی داد زد بابا میدونست که تو میری طلاق تو از آراز میگیری الان دین بدری به بابا عدا شده مونده دین بابا به بدری که قول داده دست تو آرازو بزارتو دسته هم میخوای چاوش باشی همونطور که باباشو مدیان کریم بوستان کرد تا میخوای کریم بوستانو مدیان بدری کنی عرورمون چی میشه؟ اومد بایست داد زد توهین کرد همطور باست کونتون ستایی نشستین با ریدین و دوختین؟ به سال بیار آدم بیار که کریم بستان تا حالا برکنید دوخته راضی نبودی؟ من راضیم بر رضایتی پدرم که چی بشه؟ که این بشه که دوتا داداش نزنم به تیپ و تاب به هم دیگه بزنن کجای زندگی تو رو میگیر زندگی زندگی زندگی من اینقدر سرم داره که چاوش حال الان بابای من اینه که بچه های بدری به خاطر حق اون یکیشون رفته شقه یکیشون رفته غرب حاله الان بابای من اینه که دخترش مخواد بره طلاق بگیره بابای من بچه امروز نیست گنده دیروزه از تایی دل من میپرسی تایی دلم راضی نیستم ولی تایی دلم من کجا تایی دلم بابام کجا دلم نمیخواد ببینمش که ماتش برده به در و دیوار که بدری داره تنش زیر خاک کنم؟ بابامه تو این سن اینه بچم شده لازی به قمه بچم باشم؟ نه لازی به قمه بچم نیستم آجرا رو دوباره بچین؟ بعد به وقتش یکی یکی وردار از میرون و برادرها بچست به زندگیت حتی اگه نه حتی اگه یه لحظه فکر میکردم نمیخوش دنیا رو به هم نیختم زنش را چی حتی یک کس تادرش هم به هم نگشته پا دخل. دنبال شهر با هنیفوچ آموش از صبح تا میکنم گفتم تو کی؟ تادرشه چه نیجه خانم اکس آقاشو لوله کرد و رفت پرسیدم کجا میری؟ گفت میرم جایی که سر نخواستن دعوا نباشه از خونه شروع کردم چون خونه خوهرم رو ریختی به هم از خونم شروع کرد از خونت شروع بکنم پیت بنزین داری؟ خون؟ دمو ندیدم چجوری عشق وقتیش نیستم من خیلی نگا رو ناراحتم تن <تصفيق> هو می با دوبیا دل تنگ دیدم بغض شب تا من هر چه دارم اشد a shufta za khmaz badam ida a shufta a